در باره امام جواد مرحوم کلی نقل بکند که علی ابن گفت من دیدم امام جواد آمده قد او رو نگاه کردم و از او رو نگاه کردم لعصف قدمه و قده او اهل مصر تا وقتی برای مردم مصر خواستم وصلش رو باز بکنم بدانم دم ففران امام جواد نشست بعد فرمود ان الله هحتجی به امام که محتجی به فقال با آتینالهوش یا از زمیر من با خبر بود. فرمود تا حالا خیال کردی که من کودکم به مقام امامت نمیرسم. جریان امامت مثل جریان نبوت است. خداوند این مقام را گاهی به افراد کودک و چهرسال میدهد، گاهی به افرادی که به چهل سالی رسیدن میدهد. در قرآن کریم هر دو بخش آمده. هم درباره این که خداوند کودکی را به مقام نبوت نائل کرد سخن آمده به میان آمد و آتین دار حکم سبیه هم درباره سائلین که فرمود بلن ما بلغ اشددهو ما به او حکم دادیم آمده این های یه مقامات که خدا باید اعتاب کنند زالک فضلالله علیه یه جعفر که بخش مهمی از روایات فقهی ما به برکت این عنصر شریف از وجود اون موسیب بجعفر علیه السلام رسید است مجلس درسی داشت شاگردان دیدن، دفعتا علی بن جعفر این پیر مرد گرون قدر از محفل درس برخاست به استقبال کودکی رفت دست او را بوسید و ننشست امام جواد فرمود بشین ارادت شما استادید، من بشینم بعد از اینکه این صحنه به پایان رسید، شاگردان علی بن جعفر به او عرض کردن شما در برابر یک کودک اینقدر خضوع و قرنش می‌کنید؟ او دست به محاسنش کرد بود ان الله لم یو حال حاضه شیبه و قد اهل حاضه استبی. خدا مرا با این سن دید، مرا اهل امامت نیا و او را اهل این مقام کرد. او یه حساب دیگری است. عالم شدن، مشتہد شدن، مرجع شدن اینا جز شئون بشر عادی امام شدن همون طوری که امام رضا سلام الله علیه همون تا اون بهی سنج من اید المتناولین عین العقول و منهازا عین الاختيار و منهازا همون طوری که در ظاهر دستتون به ستاره های آسمون نمی رسد درکتون هم به مقام امامت نمی رسد اونها انسان های دیگری هم